درس پلان دوم از درس استاد جعفری این بحث در یعنی بازه از موارد شک منجز تکیفه مثلا شک قبل از فص شک منجزه بنا بر ولی مستدی بعد و فص و تخیضه شک در اطراف مجمالی شک که شک در شبهات محصول تحریمیه شک که منجزه بنابراین این همه مثال پس شک تریقی اگر این نباشه مثال نباشه این چی شک در دماغ شک تریقیه نمیشه بگیم آقا من شک دارم این زید آیا قاتله یا قاتل نیست ما اینو قساس کنیم منجز تکریفه یعنی وجود احتیاط میاره شکی در اموال تصیل همینطور شکی در اعراض همینطور بنابراین ده ها مثال برای شکی تریقی داریم شکی که مثل قط منجز تکریفه شکی تریقی و زن تریقی و قطع تریقی مهد به معنای شک و زن و قط تریقی و منجز داریم از هم قصد منجز داریم هم زن نمودی چیز داریم اون شک منجز داریم بزرام در بعضی از هواشی و در خیلی از شروع قائل شدن به این که ما شک تلیقی نداریم این مثال رو داریم این یک مذتر منجزی هست یعنی میده یعنی واقعه بشنو میکنه دیگه در روز سه افته داریم میخونیم قد منطقیز تکلیفه یعنی واقع برگردن شما میاد قد پیدا کنه به خمریت حرام میشه شک که در خمریت در موارد شبهه محصوله بر شما واجب میشه اجتنابش فتیه یعنی منطقیزیت این یعنی تکلیف برگردن شما میاد حریقیت یعنی تکلیف بر شما ثابت میکنه هرچی شک نه علمش ما نه حالا اون مثال شبه محصوله رو بذار کنار شک که در... قرص رو چی در اعراض رو چی میگی؟ شک در قبل از فرص رو چی میگی؟ وجوب جوب که وجوب و جوب احتیاط و جوب احتیاط. احتیاط. احتیاط نه احتیاط عرض نمیشه میخوام بگیم شک در خیلی از موارد منطقیز تکلیفه این طور از شک و تردید هیچ خاصیتی نداره شک خاصیت داره قبلا ما به این فقیر نه خور آخه فکر خور وقت نیست ما اینا رو بگیم من دارم نمونه میگم من قبلا به این فقیر کمک میکردم به خاطر اینکه علم داشتم به اینکه فقیر الان شک دارم در اینکه فقیریانه دیگه نمیشه بسید کسی بده معیزی نیست موقع زمه نیست قبلا به ادالت این شخص علم داشتم الان شک در ادالت دارم نمیتونم نماز بخونم بخونی شک ده ک بگی ما من ملخصی كلام رو دارن میگه وقتی میگن غث تریه یعنی وچت دیگه وچت دیگه تکالیف, تکالیف واقعیه رو غث و زن و شک اثبات میکنن به معنای در واقعه دیگه همونه همش یکی ان همش یکی در این که اعتباری ان ذاتی هن، اونا داره و الا تریقیت داره به واقعی این یعنی حجته یعنی اون واقعه به شما مصدق میشه در این چیزا جبهه نیست تمام بحثا که برخلاف مشروع بود یا مبانی اعتباری اختلافی اونا رو قبلا گفتن این یک مطلب را حالی من میخوام بگم که اینا گفتن زن شک تریقی نداریم داریم شک تریقی یعنی شکی که حجت باشه در خیلی از موارد در خیلی از قروعات شک منجز تکدیف برمسته و در مواردی که شک منجز تکدیف باشه ولی ظاهرش احتیاطه ولی فتوای به احتیاطه نه احتیاطه در فتوا بنابراین با فتوایش فهم نده حالا بعضی از اطالب رفته رفته از قموزش در میاد واضح میشه مطلب دوم اینه که ما گفتیم که یعنی احتمالا پخته نشده اینه که حجیت چه خاصیتی داره و چه ماهیتی داره ماهیت حجیه و خب شیخ قالب اینکه ذاتیه ما گفتیم اعتباریه ولی مونده اینو اثبات نکندیم که حجیت رو چرا اعتباری کرد گرفتیم در رابطه با ماهیت و چهار تا مبناه هست این مبانی را آقای حفظ کنن ما وقتی میگیم تحقیش کنید نه اینکه برید بگردیدیم و رو سرگردان بشید حفظ همین مطالب کافیه کسی اگه وقت بذاره همین مطالب رو حفظ کنه کافیه در این ست ست ست کرده باشه بعدا اگه وقت داشتید مناجم بکنید نداشتید چهار تا مبناه در اینکه ماهیت و چیه؟ القطع حجتون الفطوا حجتون شک حجتون زن حجتون اماره حجتون تمام حجیت ماهیتی چیه؟ مرنای اول مرنای شیخنساری که حجیت ذاتی قطعی همون ذاتی باب معبولات دوم اینه که حجیت ذاتی نیست لازم ذاته لازمه ذات، ذاتیش نیست آه آه این هرم آقاین به هم تا فرق اینا رو میدونن دیگه شما نمیتونیم همه رو توضیح بدیم که همه رو میدونیم ذاتی با لازم ذاتی فرق دار مبنای ثبت اینه که خودشیت اعتباریه این سه تا مبنا این سه تا مبنا دلیلشون چیه دلیل این سه تا مبنا یک چیز یعنی هر سه مبنا به یک دلیله و اون دلیل قاعده حسن قبه یعنی اونایی که میگن ذاتیه اونایی که میگن لازم ذاتیه اونایی که میگن اعتباریه مثل محقق اصفهانی اینها همشون مستنداتشون قاعده حسن قبه منتها قول اول و دوم حسن قبه رو ذاتی میدونن حجیت رو ذاتی گرفتن مبنای سوم حدیثیت رو اعتباری گرفته به خاطر اینکه که حسن و اعتباری میدونه و حازا فراغون بین المحق قلصهانی و مشهور در این که قاعده حسن و رو قاعده اعتباری میدونه بعد داخل پرانتز آقایین برا نشون و وضوح مطلب این رو کنن که ما دو تا مسئله داریم و دو تا واقعه یکی باب مسالم و مفاسده که اینا واقعیت داره یکی باب حسنقوبه که اعتباریه حسنقوبه اعتباریه قبه اعتباریه در مقابل مسالم و مفاسد که ذاتیه لذا محقق اسپانی تفتون به خرج داده متوجه این معنی شده که قبه نمیتونه ذاتی باشه بنابراین حسن و قبح عقلی به معنای ذاتی که مشهور قائلا معاصرین هم خیلی طرفدارشن این در مکتر و محفظ قصوانی مناقشه شده حسن و قبح ذاتیه به معنای عقلی نداریم بعد این یقینا نیاز به بست کلام داره توضیحاتی از نظر مبانی فلسفی و کلامی کار منجهاتش نداریم مهمه که در اثر رسائل ما شفاف به چیه مشهور قائلا به ذاتییت که قاعدن به لازم ذاتی ادهی مثل محفظ قسوانی قاعدن به اینکه اعتباری مستندات همه قاعده حسن منتها منتحا اونها ذاتی میدونن حسن قبه ذاتی ولی محفظ قسوانی حسن قبح رو ذاتی نمیدونه اعتباری میدونه بعد حسن قبه عقلی که در کلمات هست محاصلین هم عقلی به معنای ذاتیه مبنای چهارم ما به خاطر ورود بعضی از ارادات مهم چون مبنای اول و که هیچ قبول نداریم یعنی چه ذاتی باشه چه لازم ذاتی مختل یقیناً میمونه مبنای محقق ثانی اعتباریت و رو به جمله قائلیم منتهی به خاطر ورود بعضی از اشکالات خیلی عمده سبوتن و اثباتن بر مبنای محرط قصهانی مبنای چهارم و مبنای یعنی حدیت آیا امر اعتباری یا امر ذاتی؟ این در این ما قائل به تفسیل دوره سابقم گفتم خیلی مکرر تکرار شده که حدیت قائل به تفسیل تارتن ذاتیه تارتن اعتباره. در علوم حدیلی ذاتیه در علوم اعتباری مثل فهر اعتباری و چون ما سر کارم با علوم اعتباری بوده دائما گفتیم و چی اعتباری حالا چرا اینطوریه؟ چرا این, این دلیلشو خیلی در حد پنج دقیقه میخوام بگم، برای که ذهنها شفاف بشه مطلب دلیلش چیه که چرا اونها چرا ذاتی میدونن اونا چرا اعتباری میدونن ما چرا باید به تفسیل شدیم علتش برگشت به اینکه که ما دو تا قضیه داریم دو تا قضیه رو بنویسن. بنمیسن دو تا جمله دو تا قضیه این یک قضیه قضیه دوبوم الخمره هرام یکیش از بدایه حقیقی است یکیش از بدایه اعتباری تو این دو تا قضیه نسبت هست نسبت سقوط زوجیت برای اربعه و نسبت سقوط حرمت برای خند این نسبت رو چی درکش میکنه؟ مدرک این نسبت کیه؟ یقینا عقله منتها ما دوتا عقل داریم یا یک عقل داریم مشهور قائلا میگه ما یک عقل داریم دو عقل نداریم یک عقل مدرکاتش فرمی کنه که خود ابن سینا و من تقدم به این مبنا و من باز خیلوی کردن قایلا به همین مبنا الا به منیار در ات قائل شده به اینکه ما دوتا عقل داریم و قول عقل همین ما دوتا عقل داریم یک عقل مال ملاسدره است یک عقل مال ما است. عقل ما غیر از عقل مال است ست سالم به به عقل ملاستا نمی رسیم. بنابراین دوتا عقل داریم بهمنیار باقیل بینکه دوتا عقل داریم ماهیتش ذاتن فرق داره نه یک عقل باشه مدرکاتش فرق بکنه مدرکاتش حالا چی باشه این از عرب و جون نسبتش ذاتی به چه معنا؟ همون معنی که در المنطق خوندید سبوت محمود برای این موضوع ضروریت و صدق دائمت و صدق کلیت و صدق ذاتیه یعنی چهار تا ویژهی داره زوج ثابت برای عربه و چهار تا خاصیت داره خاصیت داره اینه ضروریت و صدق غیر قابل انتقالی شما یه عربهی رو پیدا کنه زوز نماشی دائمت صدق کلیت است بعد ذاتیت این چهار تا در این اربعات و هست چون اینطوریه ضرورت درش هست ذاتیت درش هست از مدرکات عقل نظریه از مدرکات عقل نظریه ولی در الخمر حرام این چهاتا ویژگی نیست این نسبت بین حرمت و خم چهار چهاتا ویژگی رو نداره وقتی نداره اعتباریه شاره اعتبار کرده این خم باشه عمری اعتباری و قوامش به اعتبار معتبره هیچ واقعی در کار نیست تمام واقعش همون نفس اعتبار بنابراین نه ضروریت و صدقه نه کنیدیت و صده. نه دایمت و صدقه نه داره وقتی اعتباری اعتباریات از مدرکات عقل عملی از مدرکات عقل عملیه یه فل داخل پرانتز باشه که این خودش آیاتی داره یعنی بحث داره یه فل داخل پرانتز بمونه بعدن معلوم میشه چرا میگم. بنابراین مدرکات دو اسمه. یا ذاتی رو درد میکنیم یا اعتباری رو اگر ذاتی رو درد میکنیم با عقل نزنیم اگر اعتباری رو درد میکنیم با عقل عملی. این تا اینجا مقدمه بر اینکه چرا ما حجیت رو قائل به تفسیر حجیت تفسیر چیه یعنی علم حجته کسی نمیتونه این کارش کنه به چه معنیست این معنی که خب در های اصولی و کلامی منطقی نیاد همه اینا رو یه ولی ملخصش میخوام بگم در قضایه حقیقی هجیت هجیت این هجمغلی به معنای وجوب تصدیقه و در قضایه اعتباری به معنای وجوب اعتباره اولی واجب تصدیل دومی واجب الاتباع بنابراین اصول اقاعد و امثال ها جز قسم اول میشه ضروریات دین و دین جز قسم اول میشه لذا فرقی اونجا قاعده که منکر ضروری دین توبه ظاهری نداره و حکمش ادامه به خاطر که اعتباری نیست نه این از مدرکات عقل نظریه مدرکات عقل نظری واجب و تصدیق هم واجب و اتباع ازا که ایسی من بگه تحقیق کردم دیدم دین اسلام یه اشکالاتی رو نفتونه جواب بده و امسال اینا. واجب و دومی دو واجب و در اولی و چیت علم به معنای مجوب تصدیق ذاتیه در دومی حجیت علم به معنای موجوب اتبا اعتباری بعد حجیت به معنای موجوب اتباه یعنی چی؟ یعنی تضمین کننده تضمین کننده منافع انسانه چرا قطع بر ما حجیت در اعتباری ها؟ تمام کارهایی که اقلا دارن همش اعتباریه ها تمام کارها شغل ها تمام اموری که از شوناط و قلایزامی همشه اعتباریه اینا برای چیه برای تضمین منافع و فواید پس حسن غو به عقلی ما نداریم حسن غو اعتباریه به خاطر تابع منافع و فواید انسان این تا اینجا این مطلب اومده بود که حجیت در علوم اعتباریه میشه اعتباری در علوم حقیقی میشه ذاتی حالا مطلب به یادم نرفته باشه بمونه و فرق بین علم در اصول با علم در منطرم معلوم میشه یعنی اون علمی که در قضایه حقیقی از علم منطریه اون چه چهارتا خصوصیت رو داره ولی علمی که در علوم اعتباریه به معنای جزمه ولو بر خلاف واقع در میاد اینها رو یه مقدار آقایون هضمش کنن این بحث که تا الان گفتم این یه تقیمه ای هم داره اتم مش و اواخر بحث تجریب با این یه تقیمه ای داره که و الان, الان ماهیتش معلوم شد چهار مبنا از مبانی ماهیت حقیقیته ذاتیه لازم ذاتیه اعتباری به معناهی که محقق اسرانی گفته یا تفسیلی که ما گفتیم تحقیق کنید یعنی روش تعمال کنید مباعثه بکنید حداقل اگل بشینه که آقای این رو باید حفظش کنند نسید این رو حفظ نکنه نمیتونه اولا اونا رو قبلا همه رو گفتیم و نوشتیم اینا که دارن میگن چیه لوح محفوظ اینا چیه اونا ارتباطی به تکالیف ما نداره بعد همه این جزوه ها سیدی شده آقایونی که میخوان به صورت همین سیدی که خیلی زحمت کشیدن که شما یقینا بهتر از جزوه ها میتونید از اینا استفاده کنید یا سبتنان بگید سبتنان بکنید اینا رو بگیرید بعد تحقیق کنید فیهه تبیان کن یعنی اون چیزی که اون سوری توش اومده مد متن. آره متن. نه یعنی این همون شکل جزوه ها رو داره بعد بهرستش هم داره بهرست دارم همه جزوه ها رو خب بردن اسکنش کردن به این صورت در آوردن میگه بهتره که اون حدینش خیلی بالا. این بهتره خلاصه همه چیز توش هست و لارت بن و درش اومده، نه واقعیتیه دیگه ما به س تا کتاب نمیخواد آقا این راهش بازه باید اهل تحدید باشید یقیت را رو پیدا میکنید ولی حالا اینکهها هم ما با تحین نوشتیم با تحمل نوشتیم رو هر صدش ما یک روز وقت گذاشتیم که اینا رو العله کردیم آقاین هضمش کردن راهن بعضی از مواردی. حالا این رو بگیرید این دوتا مطلب بود از مباحث قبل مونده بود بعضی از مطال مونده شاید اون ابحامات جوزی رو داره اونها رو رفیش می کنیم زمان می بره سرگی در همین مباعث داریم می خونیم. بعضی از مثال هایی که گفتیم باز تکرار بشه که معلی باشه. یه مطلب هم که مونده اواخر آخر بحث تجردی می خونیم حالا فیدن بحث تج مواجیدم من اینجا ای چیزی بنویسم ما دو تا بحث داریم ما الان روی این بحث کنیم بوتیات قطع غیر مصیب بعضی از موارد قرض مصیب نیست به خاطر اینکه قرض اصولی. اصولیه علم وجدانی که نیست علم لطنی نیست علم منطقی نیست که مطابق با واقع باشه نه قطع جزم منه. من من جذب پیدا کردیم زن یه چیزی گفت ما جذب پیدا کردیم زن گفت من درست بخونم تو هم پیشرفت میکنیم من جذب پیدا کردیم با اینکه اینطور نبود بعد جزم شاید مطابق با واقع در نیاد، با خاطر ما در قطع قیده مصیب بحث میکنیم که دو تا بحث رو تشکیل میده یکی بحث تجربی رو یکی بحث قطع قطع و اینا خیلی اهمیت داره در فروات فقهی بنابراین اصحاب دو تا معنا داره. اینا رو همه رو آقایم بنویسن اصحاب دو تا معنا داره معنای اول اصحابه اینه که قطع ما موافق با واقع در بیاد ما قطع به خمریت پیدا کردیم واقعا هم خمر بوده موافقت قطع من با واقع و نفس سلم و لوح محفوظ و مقام سبوت و مقام اراده و مقام جل چی میخواد بگید اونه میگن مصیبه به معنای اول که قطع من با واقع یکی در اومده دوم حسابه به معنای دوم اینه که مطابقت قطع با مفتوش به چه معنا؟ به این معناه که قط از راه مغلایی حاصل شده باشه اصابه به این معنا، قط مصیبه یعنی این از مبادرات مغلایی نشد گرفته هر آقل این رو تکنه به این قط میرسه مثل وسواس نیست مثل تا نیست مثل انسان های ساده نیست هر آقلی از این راه بره به این قط میرسه قط مصیبه معنای دوم مصیبه یعنی موافقه با مبررات و قلائی با ارتکازات و قلائی با مبانی و قلائی پس دو تا تفصیل برای صاحبه است. حالا در باب تجربی اولی مردی رو بحث کنیم در باب قطع قطع دو بخن بخن بحث کنیم و این برگشتش به اینه که آیا قطع مطلقا حجته یا اینکه قطع مصیب حجته اختلف و علام ویزالک حتی خود شیخنساری یعنی حتی قائلینه به اون دوتا مبنای اول و دوم دو ما الان در مبانی ماهیت و چهار تا مبنا رو گفتیم اولی ذاتی دومی دو لازم ذاتی خصوصیت این دوتا مبنا اینه که از ذاتی لا یعنیلت اولا ثانیه از ذاتی لا یتخلطت ولا یختلف بنابراین این دوتا مبنا تمام قائلینشون باید قائل باشند به حدیریت قط متلما چه مصیبش چه قیل مصیبش به هر دو تفسیرش به خاطر ازادی حدیریت ما که نمیتونم از این بگیریم چه مصیب باشه چه مصیب نباشه چه اصابه به معنی اول چه اصابه به معنی دون هر قطعی حاصل بشه حدیریت ذاتی شه یا لازمه ذاتی شه بنابراین شیخ انساری باید یران مثل مرحوم های خویی کتابه این دو مبنا هستند؟ اینها نباید بیان در تجربی بحث کنن نباید در بطن تا بحث کنن برای چی دارم بحث میکنن اونا که لازم ذاتی میدونن اینا خیلی مهم ما خدا میدونن اگه کسی اینا رو اینطوری حزمش نکنه ما خیال میکنیم دیگه همش رو به راهه با اینکه اینطور نیست آقایی بر خلاف مبانی بعضی از مباحث رو مطرح میکنن شیخ انصاری باید بگه قطع قطع حجت مطلب و قطع غیر مصیبه به معنای اول یعنی در باب تجربی حجت مطلب دیگه نباید بحث کنن هم همینطور باید بگه من اینا لازم ذاتی میدونم وقتی لازم ذاتی لاینفکه وقتی لاینفکه نباید در حجت قطع قطع, قطع تا که قطع غیر مصیبه به معنای دومه بحث چرا به خاطی که این از احکام عقل و احکام العقلیه غیر قابل به تفسیص تفسیص نمیخوره پس چرا مادم بحث کردن نباید بحث کنن معلوم میشه که اعتباریه نظر راه خوب رو اصفهانی رسده که اعتباری گرفته حالا آیا قطع؟ این بحث که هم مزهره قط مطلقا یا قطع مصیب خود ولو اینکه یعنی اون قول اولیدی که ولو مخالف با واقع در بیاد ما قطعه به خمریت پیدا کردیم در واقع خمر نبود آیا باز حدثیت یعنی اقاب میاره ما اگه خورده باشیم اون رو یا نه بحث در اینه حالا از م بکنیم این مطالب که شیخ داره میگه خیلی مهمه در سه تا مقام در باقی تجربی باید بحث بشه در سه تا مقام مقام اول مقام... به تجربی مقام دوم حرمت تجربی مقام سوم، استحقاق اقاب متجربی این سه تا مقام رو بحث کنیم شیخ در هسته بحث کرده و هیچ کتابی به اندازه شیخ در وسایل مفید بحث نکنیم یعنی واقعا وسائل و مکاسب تسخیه شده اون ماهیت خودش رو الان پاینا بردن و روزی سه چهار صفحه که میخونن دیگه مطالب نیمونه. با اینکه شیخ خیلی مطالب داره. یعنی تمام منطقتن خودش رو احیا کرده. ولی متاسفانه قدرش مجبوره به خاطر اینکه ماها خیال میکنم اینا چیزی نیست. با الان همین بحث آیا بحث فقه بحث اصولی یا بحث کلامیه شیخ میگه هرسه. یعنی هم بحث کلامی هست هم بحث فقهی هم بحث اصولی قبل از ورود به بحث یه مقدمه رو من بگم تجری دوتا معنا داره یک معنای لغوی داره یعنی همون جرعت پیدا کردن کسی شمشیر بردار مولا رو بخواد بکشه یا پسر مولا رو بخواد بکشه جرعت جرعت پیدا کردن معنای تجربیه که در دعای گمه ایدم اومده و قویه. و گناه بحثی درش نیست تجربی لغوی گناه کسی جسارت و جرعت پیدا کنه بر مولا این گناه حالا این قول که گناه و حرمت این همال افعال اختیاریه انسانه اینکه که به فعل اختیاری نرسیده. قصد باطنیه اینو سابقه سابقا بحث کردیم که مواردی هست که اعمال جوانهی مثل اعمال جوارحی و افعال جوارحی محکوم به حکم تکثیری هستند بنابر اینطور طور نیست اگه فعل جوانهی باشه بگیم نه حرمت نداره اونم حرمت داره بزا معنای لغوی تجاریه جرأت پیدا کردن اون از محل بحث ما خارجه معنای اصطلاحیش برای تبیین معنای اصطلاحی چهار تا اصطلاح رو آنی کنم که ما در کدومش میخوایم بحث کنیم چهار تا که یکی اطاعت یکی اسیان یکی انقیاد یکی تجربه اطاعت اسیان انقیاد تجری اطاعت یعنی اطاعت اوامر و نواهی که به مارسیده رسیده و موافقه با واقعم در میاد اسیان یعنی مخالفت با اوامر و نواهی که اون هم باز مطابق با واقع در اومده یعنی حرام بود شراب حرام بود واقعا و به ما رسید و ما مخالفت کردیم میگن اسیان نماز واقعا راجب بوده به ما رسید اتیان کردیم شده تا. بنابراین اطاعت و اسیان در رابطه با احکام واقعیه واسله به مکلف که منجز شده بود و این مکلفم انکسال کرد این دو تا حموزی نداره محل بحث نیست یعقینا انسان رو مستوجب عقاب میکنه ولو عقاب فعلی براش نیاد اطاعتم مستوجب فضل و رحمت و نعمت هست کاری به فعلیتش نداره این نماز در این و تجربی این یعنی به خیال امر به خیال امر امر واقعی نبوده به خیال امر من امتصال کردم من خیال کردم این نماز امر براش وارد شده خونده بعدا معروفه که امری کار نبوده به خیال امر امتصال کنیم میگن این قیاد در اسطلاح اصولی و فقیبش میگنه این قیاد و یقینات ثواب برش متردده میشه به خاطر قاعده تسامح در عدل که توصیه داره همه این موارد رو میگید. و بله. نه نیست میگم اون توسعه داره این گفتم قاعده نگفتم دلیلش قاعده تساموه قاعده تسامح و عدل در عدلشونت توسعه داره بنابراین تبیینش نیاز به تبریب داره یه چیزی باید بهش اضافه کنم تا اینو بگیره از اون باب نیست شبیه اون عمر خیالیه من خیال کردم یعنی قصف پیدا کردیم که اینجا عمر هست واقعا نبود به این معنا داریم میگم خیالیه و تجری اینه که قطع پیدا کردیم به یک حرمتی و مخالفت کردیم قط پیدا کردم به خمریت این مایع و گفتم با اینکه خمره میخوام بخورم و خوردیم دیدیم سرکه بوده یا آب بوده حالا این شخص متجری چون اندیاد از موارد فضله استحقاقینا درش نیست اون از بحث کلامی میتونه تغذیه کنه و مسایلش حل ده. ولی تجرزی رو کنیم شخصی قطعه به خورمت پیدا کرده و مخالفت کرده این عقاب داره یا نداره این قب داری یا نداره این حرمت داری یا نداره در سه مقام باید بست کشه <تصفيق> چی؟ <تصفيق> فر نداره, نداره. ما دیکیه شدیدترینشی گفتیم وجوب احتمال داره که تවසلی باشه با تفسیل سایف و من خودم تفصیل سایر اصول پیش میاد فقط برای مثال حرمت داشت اینکه مناقشه درست نشه پس تجری یعنی قطع به تکلیف و لا تکلیفه فی الواقع حالا این قد حجت یانه کاخ غیر مصیبه یعنی مطابقته با واقع نداره من قد پیدا کردم ولی با در کار نیست این قطعه حجته این قطعه غیر مصیب یا قطعه در مواردی حجته یه مصیب باشه یعنی این منجزیت و معذریت و اقاب و حرمت به امثال اینها در مواردی میاد که مطابق و بواقع باشه یا نه. هر قطعه هاست بشه یقینا تکلیف رو میاده چی بگیم؟ عل القائده چون احکام تابع ملاکات نفس الامری هست بنابر. مکتب عدهیه یقینا نباید عقاب داشته باش. بخواد دیگه واقعی در کاری تکالیف ما تابع ملاکات نفس الامریه و مفروض این که در این آب نبوده برای چی عقاب باشه برای چی حرمتی باشه ولی علا کل حال اومدن اصولی این بحث میکنن یعنی همین نفس خسلت بنای بر مخالفت خوبهی داری یا نداری بعد اگر قوی خوب باشه خوبهش فعلیه یا خوبش در دوره سابق گفتیم که غیر از قبه فعلی و قبه فاعلی یک زم اغلایی هم باید بحث بشه که زم اغلایی رو داره بلو قبه فاعلی نداره قبه فعلی هم نداره حرمت شرعی نداره مستوجب بقاب هم نمیشه زم اغلایی رو داره حالا از این مطالب نمیشه کدوم شم خواهد بگیر این متن هم دفت کنن و یعنی بقیه از تنگیه حندی برای چیه؟ در مطل اون خوندن حندی برای چی میاد یعنی ما یه چیزایی گفتیم ابهاماتی داره قبلا ما یه چیزی گفتیم ابهام داره بعد گفتیم قط بود چون ذاتن مطلبا خب این ابهام داره میخواد بگه اگر بخواد قد مصیب نباشه من المحتمل دو حیثیت نداشته باشه پس بحث الان فعلا در قطع غیر مصیبه به معنای اوله که مطابق با واقع در نمیاد که آیا حجیت داره یا حجیت نداره تنبیه اول انهو قد عرف ده بعد پس در موازه تنبیه انسان حالا تلف مبنای متول انسان هم اینا رو باید بدونه مثلا نباید اینا رو بخونیم به خاطر الان گفتیم چهار تا مبنا هست قسم مبنای اول و دوم اینا رو نباید بحث کنم قسم مبنای سوم و چهارم میشه بحث کرد ولی طبق مبنا اول و دوم نباید بحث نند چرا بحث میکنند پس اموری که در تنبیهات میاد همش بحث شده است صاف و روشن منتهای قموزی هست ه قموز برطرف بیشه والا ما همین ها رو قبلا خوندیم طبق مبانی هر کسی به اون نتیجه که میخواسته رسیده حالا تنبیه اول انه قد عرفت ان لا یاج فل عمله به قطعی ال از زیاددم من عدللت مثبتت کام مقوع ای قاع فقط یک چین میخواد. قاع فقط کبراه میخواد کبرایی که احکام بت قاع قدر پیدا کرده به اینکه این خمره و اگر یک کبرای داشته باشیم که کل و خمرن هررام دیگه کار قااطع آسونه و به نتیجه می رسه. قاطع تنها چیزی که نیاز داره ادله احکام و الا نیاز به بیشتر از این نداره بیشترش کدومه حجیت قطش. دلیلی بر حجیت قطعش نمیخواد و این قطع حدیتش ذاتیه بنابر مبنای اول و دوم. وقتی حجیتش ذاتی باشه دلیل بر حجیت نمیخواد دلیلی بر احکام میخواد فقط من قطع پیدا کردم به خمریت خب این صغرا لجدانی تنها چیزی که میخوام کبرا کل کلو خمرن حرام برابرین انال قاتلا یحتاج به عمله به قصهی الا از یاد منال کبرا فقط کبرا میخوام کبرایات شرعی که بیاد یه خمر حرام نماز واجبه به امثال اینا من عدد تا تا تا احکام مفتوعه یعنی کل خمرن حرام کل خمرن نجس احکام مفتوعش تو عدده ای کم ادن اثبات کردن فقط همونو میخواد یعنی غیر از عدله شرعی دیگه چیز دیگه ما نمیخواییم بخواه دیگه قطع ما حسیتی زادی فیج علو زالک یعنی این عدله مصفت رو و روایات رو خوبرای سقرای وجدانی خودش قرار میده یج علو زالک دلیل شرعی خوبرا لسقرا وجدانی که قطع ابنا دوبرای وشدانیه که قط پیدا کردی که آزا خمر و یک تا نه ازن به نتیجه قطعه به نتیجه بیدم و اذا قطعه بکن شیعن خمرن خارجن وشدانن و صغروین و قامت دلیل و شرعی علال یعنی کون حکم الخم فی نفسهایی الحرمه و یک تا اون مکلف و القاطع به حرمت ذالک شیع شرعن این نهایت چیزی که قاطع نیاز داشته همینه فقط روایات روایات رو بده به قاطع خودش با شکل اول به نتیجه میرسه ولی زان اینطور نیست زان غیر از این ادله و روایات رو باید بشه بدیم برا قطعیت زن نشن دلیل میخوند لیکن در کلام حالا میگه اینا رو که همه میدونن که قطعیت ذاتی بعد اگه کبریات رو بدیم انسان قطع به نتیجه پیدا میکنه عاصم ما فیدانی که بعضی از خطا به مصیب مصیبه به معنای اول یعنی مطابقه با واقع در نمیاد آیا اینا موثیت داره یا نداره بنابر مبنای اول و دوم خب داره به خاطر اینکه احکام عقلی غیر قابل تخصیصن برای چی تخصیص بزنیم اگر حثیت قاض از مبنای اول و دوم بنابر این حکم عقل احکام عقلی غیر قابل تفسیسه. چرا به خاطر موضوعاتش دائما ثابت و غیر قابل شبه هست نمیشه تردید کرد نمیشه تخطی کرد لکن در کلام فد اصول ان قطع یعنی این قطع غیر مصیح هزا یعنی غیر مصیب حاله و جتن علیه من الشارع مطلقا یعنی مینکانه مخالفا للواقع فی علم الله آیا مطلقا حسیته؟ یعنی همین که قد پیدا کردی احکام بر شما مستشل شد کار ندانی واقعی بوده یا نبوده شما علم به حرمت پیدا کردی حرمت بر شما مستشله وقتی حرمت بر شما مستشل بشه یقینا اقابم براش میاد فی علی و مخالفتی او ان القطع حجه على القاطع اذا صادق الواقع فعد اگر مصیح باشه حجت اگر مصیح نباشه حکیت نداره کدومشه به معنا ان لو شرب الخمر الواقعي واقعا هم خمر بوده قطع پیدا کرده و خورده لو شرب الخمر الواقعي عالما او به علیه فی مقابل من شربها جاهل. جاهلا به لا انه نهوی آ شرب و الاش شر به ما قط کای خمرن و این لم یکن خمرا ف الواقع یعنی معنای ه چیته در موارد عدم حسابابت و حسابابت که آیا قط مطلوات کرده یعنی بیایم بگییم اگر شخصی خمر واقعی رو آل بخوره؟ این عغاب داره. ولی اگر کسی مقطوع الخمریه رو بخوره و واقعا خم نباشه آیا این عقاب داره یا نداره در باب تجری میخام اینو بحث نم شیخ میگه عقاب نداره حرمت نداره در مقابل آخند خراسانی میگه داره هم حرمت داره هم عقاب داره شیخ از مقام دوم و سوم آورده فقط به مقام اول یعنی استحقاق عقاب که مقام سلومه. و حرمت شریعی که مقام دومه اینا رو منتفی میدونه تنها بحث رو در باب مقام اول که قبهه در اونجا مطرح کرده قبه هم گفته قبهش فعلی نیست قبهش فاعلیه این آدم آدم بد جنسی بوده و الله فعلش هم فعل بدی نیست اینکه شراب نخورده این آب خورده ولی سوء سریره داره آدم بدیه ذاتش بده زم مقلایی رو داره و قبحه و قلائه رو داره قبحش هم فائلیه نفعی بنابراین از مقام سوم و دوم تنزل از زل داده به خصوص مقام اول و در مقام اول منحصر به قبح فائلی میتونه پس هم حرمت منطقیه هم حقاب آخون بر شد آخون میگه هم قبح رو داره هم حرمت رو داره هم استحقاق حقاب رو داره حالا شما فقهای های محاصر کدومشو یعنی این کسی بخواد قطفا بده پنج سال بعد چی باید بگید؟ متجرد و مستوح... مستوجب اقاب میدونید یا نمیدونید؟ از الان تا فردا وقت داره ظاهر و فی بعض مقامات از اتفاق و ظاهر کلمات خیلی از علما چه در علم کلام چه در اصول و چه در فقه چون این مسئله زوجهاته یعنی هم مسئله فقهی هم مسئله اصولی، هم مسئله کلامیه اگر کسی بگه این خطابات اولیه که بوده یعنی خطابات اولیه اختصاص و این اولیه داره یا اختصاص به عناوین معلومه داره یعنی حرمت مال خمر واقعی یا خمر معلومه اگر کسی اینطوری بحث کنه این بحث میشه اصولی اگر کسی بحث رو ببره در اینکه تجربی حرام یا حرام نیست میشه فقهی و اگر کسی ببره به جهت استحقاق عقاب میشه کلام هر طوری که ما بحث کنه. ظاهر کلمات اینه که الاتفاق علی الاولی یعنی حکییت القطر مطلب یعنی مبنای اول و دنون از اون چهار مبنایی گفتیم ظاهر و کلماته در فقه در اصول در کلام الاتفاق و علال اول حال این اتفاق از کجا در آوردن از بروهات فقهی فقه ها چون فقه های ما هم کلامی هست. کسی که به مقام فقاهت میرسه این اشتافه بر همه علوم داره یعنی هم فلسفه هم کلام هم تفسیر هم سایر علوم بنابراین اتفاق این ها از اتفاق دیگران هم هست اللامه مگه در گروهات فقی اینطوری طوری داره میده که تجربی مستوحقه مستوجب اقابه معلوم میشه که قائل به حدیت قطع مطلب بنابرای اتفاق را از کجا به دست آورده از گروهات فقی من هرومنده و جماعت علی الاهازهی اجماع میشه تحصیل کرد و نقر شده اجما دارن برای این که قطع مطلقا وجده. یعنی چه مصیبش چه غیر مصیبش چرا اینطوری اجما دارن به خاطر اینا اوچیت رو ذاتی یا لازم ذاتی بنابراین من از کجا بفهمم این مبنا مختل یا مختل نیست از همین آدم میفهم مبانی موانی لازم ذاتی باشه من در قدت تا بگم قدش رو چیت داره نمیشه بگیم هیشکی نگفته وقتی نگفته تفسیص خورده تفسیص خورده کاش از این حکم مکمه عقل نظری نبوده عقل عملی اعتباری بوده پس میشه خلل در این مبانی رو انسان خودش احساس کنه اتفاق دارند و ادعای اجماع شده برای اینکه قط مطلقا جده یک پر اشینه الان نظان نزیغ الوقت کتی؟ زن پیدا کرده به اینکه وقت تمامه ده دقیقه با آخر وقت خونده. معذااله با اینکه زن به زیغه وقت پیدا کرده نماز رو نخونده یک ساعت بعد خونده بعد از یک ساعت خوند دید که هنوز وقت باقی بوده به خاطر ساعت ها رو قدیم جدید کرده بودن مردم هیچ کرده بودن. این فرموده اساب یعنی با اینکه در وقت خونده اس چرا؟ به خاطر قطعه به زن، زیر وقت و زن به زیر وقت که پیدا کرده بود اون چه بود برایش باید میخوند اینو باید یک ساعت قبل میخوند الان خونده محصیح ان نظام نزیق الوقت ازا اخر از سلا اصل این یک فر. اتفاق رو میخوام در بیارم اتفاق یه اتفاق همه علمان سه چهار سفر رو به اون مال مثال آورده بر اینکه این اینطوری فتوا میدن طبق کدوم مبناست مبنای حجیت چه مصیب چه خیلی مصیب و این کشف بقای وقت ولو بعدا کشف بقای وقت هم بشه فه اینه تعبیر هم حالا این قول که اینا زن نزیغ وقت گفتن ما برستمون در قطعه میگه وقتی زن حکمش استیان باشه قطعه به طریق این طوره بنابراین هیچ اشکال نداره ما این فرم و دلیل بر مطلب خودمون بگیریم فه اینه هم به زن نزیغ لبیان ادنا فرزی رجحان. یعنی رجحان پیدا کرد یا بهت داشته یا زن به زیر وقت داشته هر کدوم باشه رجحان داره باید بهش عمل میکرد عمل نکرده وقتی زنش مبتلا این معصیت باشه قطعش به طریق اولا و یش القطع به زیغ به طریق اولا الحمدالله na chamidanie je